خب ما خواه نخواه در گذر زمانی و اختیاری برای حرکت بیشتر این زمان یا سکونش نداریم یکی از چیزهایی که جزئی تکمینه همین گذر زمان هستش شب رو به صبح کردن، صبح رو به شب کردن این در اختیار انسان نیست جزئی طبیعت این عالمی و این گردش به طور مستمر برقراره خب این صبح و شب فقط یه زمان 24 ساعت نیست که حالا در پسول مختلف مقدار زمان شب مثلا تغییر میکنه کوتاه میشه یا روز بلندتر میشه یا به عکس در هر شکل اعتبار 24 ساعت هم اعتبار انسانیه که 24 ساعت برش قرار داده طول شب و روز رو چاره‌ای هم غیر از 24 ساعت نذاشته. یعنی نمی‌تونه یه دقیقه کمش کنه، یه دقیقه زیادش کنه. یه اعتبار مطابق با واقع جل شده، باعث شده در طرف انسان 24 ساعت. اما منطبق با واقع هست. بعضی از اعتباریات هستش که شناسه با تصمیم گیرنده هاست مثلا ارزش پول ارزش این حالا سکه هایی که دست ما هست یا کاغذی که به عنوان مثلا پول دست ما هست بالا و پایین میره اینا دست خود آدمه اما بعضی چیزها نه مطابق با واقع انسانه اومدن حد براش تعینگ کردن یکی همین بحث شب و روز هست و 24 ساعت مجموعه شب و روزیه نکته ای که باز مهم هست این هست حالا نتیجه اون نکته اول این هست که ما باید خودمون رو منطبق کنیم با شب روز. او منطبق با ما نمیشه مسئله بعدی این هست که آیا یه همچین موجوده که در طبیعت قرار داده شده و خدا قرارش داده در گردش زمین بی دور خودش شرانه روز رو قرار داده در گردشش به دور خورشید مثلا طول سال رو قرار داده آیا یه موجودیت جامد مثلا مثل کوه میمونه مثل دریا میمونه مثل موجوداتی که شعور ندارن اونطوریه ظاهرش این هستش که به ظاهر شعوری نداره اما عباراتی که در قرآن هست و در روایات هست از جمله همین دعای ششم تعبیرات خاصی داره مثلا میگه که عتید هستی تو صبح و شب رو میگه عتید هستی عتید یعنی چیزی باهوش نه باهوش چیز هوش انگار یه هوش و درایت و به اصطلاح برای خودش شعوری داره اگر شعور داشته باشه میشه باهاش معامله کرد میشه باهاش صحبت کرد میشه باهاش تعامل داشت بیان امام سدجا سامون علیه در این دعایششم همینجوره باهاش صحبت میکنه میگه تو به من این خیر رو برسون تو به من این لطف رو بکن این شر رو دفت کن از من مثلا نشون میده موجودیتش موجودیت حقیقی هست ده چیز جامد و نیست این هم نکته مهمیه لذا میشه ما استفاده کنیم از شعور او استفاده کنیم باهاش صحبت کنیم، معامله کنیم بگیم ما به تو کاری نداریم تو هم به ما را بیا مثلا اینجوری دیگه, دیگه انسان همش دنبال منفعت خودش، دنبال رفع احتیاجات خودش از موجودات دیگه هست نسبت به شب و روزم امام تاکید داره که باش خوب تا کنید او با شما خوب تا میکنه مثل جریان جریان ردخانهی که اگه در جریانش بندازه خودش رو خب راحت حرکتت رو دنبال میکنی و ادامه میدی اما مقالبش بخوای حرکت کنی ولی خسته میشه انسان خصوصا اگه اون جریانش جریان تند دو شدیدی باشه مثل ردخانهی مثلا نیم در شیب هایی که چون پر آبه کسی بخواد مخالفش حرکت کنه پار پاره میشه میشکنه از بین میره روز و شب هم یه موجودیت خدرتمندی برای خودش داره تخیل نیست هست دیگه میبینیمش حالا آره تو فصول مختلف مثلا زمان شب یا زمان روز فرق میکنه اما هست کسی هم روش تسلط نداره هیچ جانداری رو روز تسلط نداره چون بلخواه بر اساس گردش زمین به دور خودش یا مثلا دور خورشید تنظیم شده یه تنظیمی هم هستش که تخلیف بردار نیست میدونه دیگه که اهل فن هستند این زمین کرابی که به ما معرفی کردن در واقع کرابی به معنای صد درصد نیست یه حالت بیزی داره این تغییرات جعبی هم که پیدا میشه هر مثلا سی سال چند سال یک بار به خاطر اون حالت بیزی شکلی هستش که داره دوی زوایی های قرار میگیره بعد از مثلا چندین سال یا نزدیک میشه بعد این نقطه ها به قرشید یا دور میشه رضا این حالت های طبیعی رو میبینیم کم کم مثلا بظاهر نعمتی که باید باشه و نیست این یه دور طبیعی داره حالا اون بحث آلودگی و همسرافزونی و ارزون این ها شاید بی تاثیر نباشه اما تاثیر به سزایی نداره بیشتر به خودمون ضرر میزنه آلودگی هوا برای جسم برای بدن مضر هست این درش حرفی نیست اما رو این شکل آلم بخواد تغییر 100 درصد داشته باشه نیست. خیلی هیمنش منش فراتر از این هر پز که مثلا با دود کارخانه ها برون برم ماشین ها این لایت سوراخ بشه و احساس کنیم اخ مثل مثلا نایلانی که توش شاب کردی وقتی سوراخ بشه همه میریزهیم طبیعت داره کلن از بین میده این چور نیست. لذا باید با طبیعت انسان خودشو به افقی بده و الا متزرر میشه خلل ایجاد نمیشه بلکه زرر ایجاد میشه برای زندگیش برای اون پایدهی که باید ببره نمیبره و مضر هست تقلیف ما نسبت به طبیعت مزره